بسم الله الرحمن الرحیم خداوندی بی اندازه مهربان نهایت با شد هنگامی که آسمان شق شود و به حکم پروردگارش تسلیم شود و سزاوار است که باید به با آن تسلیم شود و هنگامی که زمین هموار شود و آنچه را که در اندرون دارد بیرون اندازد و خوب خالی شود و به حکم پروردگارش تسلیم شود و سزاوار است که باید به با آن تسلیم شود در آن وقت است که حقایق برملا می شود و تو ای انسان بگمان در راهی که به سوی پروردگار خودداری زحمت فراوان می کشی و در آخر کار با او ملاقی می شوی پس کسی که نامه اعمال او به دست راستش داده شد با او به زودی و آسانی حساب می شود و با خوشی به سوی کسان خود برمی گردد ولی کسی که نامه اعمال او از پشت سرش داده شد به زودی مرگ را فرا می خاند و در آتش فروزان درآورده می شود بیگمان او در دنیا در میان کسان خود شادمان بود واقعا او فکر کرد که به سوی ما رجو نمی کند نخیر خیر پروردگارش به حال او بینا بود پس به سرخی شام سوگند می خورم و به شب و آنچه را جمع کردن است و به ماه وقتی که کامل یعنی بعد گردد گردن بگمان هر یکی شما از مرحله به مرحله دیگر وارد می شود پس چی شده است ایشان را که ایمان نمی آورند و هنگامی که قرآن به ایشان خوانده می شود سجدن نمی کنند بلکه کافران پیوسته آن را تکذیب می کنند. و خداوند به آنچه با خود دارند داناتر است یعنی به اسرار نهانیشان آگاه است پس ایشان را به عذاب دردناک بشارتی جز آنانی که ایمان آوردند و اعمال شایسته انجام دادند برای ایشان مزدیست است همیشگی که هرگز با آخر نرسد